عزیزان، محبت کردم به کسی که به شما محبت میکنه کار آسونیه. اما عیسی به ما تعلیم داده وقتی کسی به ما محبت نمیکنه، و حتی با ما بدرفتاری میکنه به اون محبت کنیم. سلام و خوش اومدین. ما خوشحالیم که شما تصمیم گرفتین برای مطالعه موزه سرکو در دانشکده کوچک کتاب مقدس وقت بذارین. مثل شما منم میدونم که سخته و به نظر غیر ممکن میاد که کسایی رو محبت کنیم که به ما محبت ندارن. مگر اینکه کمکی الهی داشته باشیم. به دقت به معلممون گوش کنید که به ما کمک خواهد کرد بفهمیم که به عنوان یک شاگرد چطور میتونیم حتی مثل خدا محبت کنیم. حالا این شما و این معلم ما که مطالب بیشتری در مورد این موضوع با شما در میون خواهد گذاشت. زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت مینمایند چه عجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. آیات 46 تا 48 از متا باب پنج رو براتون خوندم که شاید دشوارترین قسمت از معزه سر کو محسوب میشه.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 در آسمانه است پسران شوید. زیرا که آفتاب خود را بر بدان و تاله می سازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. برای اینکه این اخلاقیات برتر ایسا رو درد کنیم، بالاترین تعلیم اخلاقی که تا کنون بر روی زمین بیان شده مهمه که نکات مشخصی رو در ذهن لحاظ کنیم. بسیاری از آنها رو در بررسی قبلی خود بیان کردیم اما میخواام پیش از اون که به باب ششم بپردازیم، یک بار دیگه بر روی اونها تمرکز کنیم. من روش سوال کردن عیسی از کسانی که به اونها تعلیم میده خیلی دوست دارم. آیا تا به حال توجه کردید که عیسی چند تا سوال پرسیده؟ یک بار تعداد سوالاتی رو که خدا در کتاب مقدس پرسیده بررسی کردم. در کل کتاب مقدس شما با این پدیده مواجه هستید که خدا از انسان میپرسه. چهار سخن اولیه خدا به انسان در کتاب مقدس در پیدایش باب سه سوال هست تا حالا به این توجه کردید کجا هستید چه کسی به شما گفت آیا از میوه درخت ممنوعه خوردید چه کار کرده اید خدا به این صورت مکالمه خود رو با انسان آغاز میکنه عیسی خدای در جسم هست توجه کنید که چند بار او اون چیزی رو که میشد یک معجزه باشه تبدیل به یک رویا پرسش و پاسخ میکنه یک بار این موضوع رو در انجیل متا بررسی کردم. عیسی در انجیل متی 83 سوال میپرسه. او میتونست بگه اگر انسان تمام دنیا رو به دست بیاره اما روح خود رو از دست بده، سودی عایدش نمیشه. اما او این حقیقت رو در قالب یک حقیقت خبری بیان نکرد. او این طور سوال کرد. نظر شما چیه؟ انسان را چه سود اگر تمام دنیا را به دست آورد اما روح خود را رو از دست بدهد؟ یا اینکه انسان در قبال روح خود چه چیز را باید بدهد؟ اینجا و در مرکز این تعلیم دشوار در متا درباره محبت کردن به دشمنان و مقاومت نکردن در برابر اشخاص شریر در این دنیا ایسا چند سؤال موشکافانه میپرسه. اگر تنها کسانی را که به شما محبت میکنند دوست بدارید چه پاداشی آیدتان میشود؟ شکل دیگری که میتونیم اون رو بیان کنیم اینه اگر تنها کسانی رو که شما را دوست دارند دوست بدارید به چه نوع فیضی عمل می‌کنید یا اینکه بگیم چه مزیت خاصی در اون هست تفکر حاکم صرفا همینه و این تفکر در تمام تعلیم موعظه سر کوه جریان داره شما باید متفاوت باشید توجه کنید که این تعلیم تا چه حد به طور پیوسته در کتاب مقدس و تعالیم عیسی تعلیم داده میشه در متا باب 20 آنها از مسیری می آمدن که مادر یعقوب و یوحنا آمدند و در مقابل عیسی زانو زدن. عیسی در حالی که او روی زانو خم شده بود به پایین نگاه کرد و از او پرسید سوالش این بود چه میخواهی؟ اکثر مردم وقتی چیزی میخواستند رو در روی عیسی می‌استادند و مسلما از او چیزی میخواستند. او میخواست پسرانش یعقوب و یوحنا در پادشاهی مسیح بر دست راست و دست چپ عیسی بنشینند باز هم می‌خونیم که در مسیر رفتن به اون بالاخانه شاگردان بحث می‌کردند که چه کسی در پادشاهی عیسی از همه بزرگتر خواهد بود خب او اونها رو دور هم جمع کرد و تعلیم کوچکی به اونها داد او گفت خب این بازی را دنیا انجام میده. دنیا همیشه این بازی رو میکنه. اونها می‌خوان که بزرگتر از همه باشند و دیگران همه زیر دست اونها باشن اما شما نباید اینطور باشید شما باید متفاوت باشید او در ادامه تعلیم میده اگر میخواهید در پادشاهی من بزرگترین باشید پس تشت آب و ای بردارید پاها رو بشورید اینطوری میتونید در پادشاهی من بزرگ باشید اما تاکید بر سر این هست که شاید دنیا چنین باشه اما شما نباشید شما نباید مثل دنیا باشید شما باید متفاوت باشید اینجا هم همون تعلیم هست من فارغ و تحصیل روانشناسی هستم و وقتی در کالج بودم شاید هیچ وقت اون رو درک نمی کردم من میشنیدم که روانشناسان از این قبیل حرفا می‌زدند. چیزی به نام محبت در دنیا وجود نداره. تنها چیزی که هست نیازه کسی رو به من نشون بدید که دوستش دارید و من به شما کسی رو نشون میدم که به او نیاز دارید. وقتی پسر نوجوانی به دختری زیبا نگاه می کنه و میگه دوستت دارم، مقصود واقعی او چیه؟ روانشناسان به من آموخته‌اند که شاید معنای این جمله این باشه من خودم رو دوست دارم و به تو نیاز دارم، پس تو رو میخوام. مقصود واقعی او اینه. روانشناسانی که بدبین میشوند، مخصوصا کسانی که مسیح رو ترک کرده به نظر در مورد تمام مسائلی که محبت نامیده میشه، بدبین هستند. وقتی افرادی میگن که دوست دارند، منظور واقعی اونها چیه؟ شنیدم که روانشناسی میگفت، میتونید واجه نیاز رو جایگزین واجه محبت کنید. آیا این درسته؟ به نظر من نباید درست باشه. این موضوع نباید برای پیرو واقعی عیسی مسیح درست باشه. اما در مورد مردمی که پایین کوه نشسته بودند و هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودند چی؟ به نظر میرسه عیسی این تفسیر رو درباره اونها بیان میکنه. به نظر میرسه که او میگه اگر تنها کسانی رو که شما را محبت میکنن دوست بدارید، این چه فیضی رو شامل میشه؟ آیا مطلب خاصی در آن دیده میشه؟ آیا تفاوت خاصی در اون میشه یافت؟ به پایین کوه نگاه کنید؟ حتی باجگیران هم این کار را انجام می دن. باجگیران منفورترین انسان های فرهنگ یهودی زمان ایسا بودند. اونها از هموطنان یهودی خود برای حاکمان رومی مالیات می گرفتند. به اونها وطن فروش می آنها اونها هموطن خود رو میفروختند در واقع برای حکومت روم کار می و درصدی را هم برای خود وصول می کردن. از اونجایی که قدرت روم پشت سر اونها بود مردم بیچاره در مقابل اونها آجز بودند باجگیران نفرت انگیزترین افرادی بودند که میشد به اونها اشاره کرد عیسی در این تعلیم میگه که حتی باجگیران هم این کار رو میکنند باجگیران هم افرادی رو که دوست دارن محبت میکنند. پس عیسی میگه اگر تنها کسانی رو که شما رو محبت کنند دوست بدارید، وقتی روانشناس میگه شخصی را به من نشان دهید که دوستش دارید و به شما فردی را نشان می دهم که به او نیاز دارید، من هم شخصی را به شما معرفی می کنم که در مقابل شما را دوست داره، به نظر شما چه عملی را انجام میدید. این کار هیچ فیض و محبتی نداره. هیچ نکته خاصی در اون نیست، هیچ تفاوت خاصی در اون دیده نمیشه. به یاد داشته باشید که نمک جهان بودن بدین معنا هست که شما این نفوظ و تاثیر رو دارید که، جهان را از فاسد شدن نجات بدید به همون اندازه که وقتی نمک را به گوشت میمالند تا از فاسد شدن اون جلوگیری کنند مالیدن گوشت با گوشتی دیگر اون رو حفظ نمی‌کنه نمک را به گوشت میمالند تا اون رو حفظ کنه چون ذات نمک با گوشت متفاوته چیزی که عیسی به طور پیوسته می‌خواد در این قسمت به ما تعلیم بده اینه که اگر میخواهید راه حل و پاسخی برای دنیا باشید باید متفاوت باشید شما نمیتونید فقط هر جا که جنگ سگی و موش‌دوانی باشه برید. همونطور که گفتیم و سگ یا موشی باشید که با سگهای دیگه بجنگید و موشهای دیگر رو بدوانی. باید متفاوت باشید و بعد به دنیا نشون بدید که میتوان متفاوت بود. راه متفاوت دیگری هم هست و اینگونه این سؤال عمیق رو مطرح میکنه. اگر تنها با برادران خود معاشرت کنید یا با دوستان خود اگر فقط با دوستان خود صحبت کنید چه کاری بیشتر از دیگران انجام می دهید؟ راستش رو بخواید وقتی به این ها از متا باب 5 نزدیک میشید شاید این چالش برانگیزترین حقیقتی باشه که از این قسمت برداشت می کنید. کار شما چه مزیتی بر دیگران داره آیا نکته متفاوتی در اون دیده میشه اگر واقعا تعلیم مسیح رو درک کنیم مثل این آیات که تولد تازه رو توصیف می‌کنه مثل دوم پنج هفده پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است چیزهای کوهن در درگذشت اینک همه چیز تازه شده است، پس میفهمیم که همه اینها عمل خداست اگر واقعا معنای تولد دوباره توبه و نجات رو درک کنیم، بعد از آن خواهیم فهمید که خلقت تازه در مسیح بودن برای شما به چه معنایی است. مسیح را در خود داشتن به چه معنایی هست؟ در مسیح بودن، زندگی کردن در این دنیا همراه با او در اتحاد با او بودن همچون شاخه‌ها که به تاک متصل هستند همه اینها به چه معنایی هست؟ همه صرفا به یک معنا هستند ما باید متفاوت باشیم باید چیز متفاوتی در ما باشه باید نکته خاص در ما باشه اگر ما فرقی نداشته باشیم اگر ما فرقی نداشته باشیم نسبت به مردمی که پایین کوه نشسته اند راه حل و یا پاسخه بهتری نداریم اما اگر با فیض خدا توسط موجزه مصالحه و موجزه تولد دوباره و فدیه و نجات اگر همه اینها تنها حرف نباشند بلکه توصیفی از یک واقعیت تجربه از یک ارتباطی که در زندگی دوام داره باشه پس جان کلام این خواهد بود. باید متفاوت باشیم و این تفاوت باید بر اساس پاسخ ما به این سؤال آشکار باشه. ما نسبت به دیگران چه کار بیشتری انجام می دهیم؟ این سوال در درجه اول در چارچوب محبت پرسیده میشه. این رو به یاد داشته باشید. محبت بلشرت وقتی عیسی روی این موضوع تأکید میکنه این رو میبینید. اگر تنها کسانی رو که به شما محبت میکنند دوست بدارید، اگر به کسانی که به شما سلام میکنند سلام کنید، خوب هر کسی این کار رو میکنه. آنچه او در اینجا به ما میگه در واقع تنها این هست. این محبت شرطیه این همان محبتیه که در میان جمعیت پایین کوه جریان داره وقتی مردم میگن که کسی رو دوست دارند تا زمانی که خلقت تازه‌ای در مسیح نشدن مسیح در اونها زیست نکنه پس احتمالا اونها تنها کسانی رو دوست دارند که محبتشون میکنن اونها به طور مشروط محبت میکنند یعنی اگر افراد شرایط آنها را اجرا کنند پس آنها را دوست خواهند داشت اگر افراد شرایط آنها را نسازند پس اونها رو دوست نخواهند داشت. بارزترین ویژگی محبتی که کتاب مقدس تعلیم میده، محبتی که خدا رو تعریف میکنه، محبت آگاپه است. به معنای محبت بلاشرط. او باران و آفتاب خود را بر مردم میبارونه و میتابونه، فارغ از عمل کرده اونها. او ما رو دوست داشت و روی صلیب رفت و برای ما مرد، نه برای عملکرد ما، زیرا او ما را دوست داشت. کلماتی همچون فیض و رحمت بدین معنا هستند فیض اون صفت خداست که همه چیزهای خوبی رو که ما لایق اونها نیستیم به ما میبخشه رحمت اون صفت خداست که او تمام چیزهای بدی که ما شایسته هستیم از ما دور میکنه فیض و رحمت این واژه ها چیزهایی رو در مورد خدا به ما میگن اونها به ما میگن که خدا محبته و خدا بدون هیچ شرطی محبت میکنه خب این نقشه خدا و نقشه عیسی برای تک تک ما هست. شما نسبت به دیگران چه کاری رو بیشتر انجام میدی؟ وقتی عیسی این تعلیم برتر رو در اینجا میده، دشمن خود رو دوست بدارید، وقتی مردم بر شما جفا میرسانند، شما را لعنت میکنند، از شما متنفر هستند، وقتی تمام این چیزها رو به ناحق به خاطر نام من بر شما روا میدارند، از شما انتظار میره اینطور برخورد کنید. همه اینها به دنیا نشون میده که خدا چگونه است. این تنها شباهت خدا رو به ما نشون میده. و وقتی بدون شرط دشمن خود رو محبت میکنی، افرادی که این بلاها را سر شما میارن، شما مانند پدر آسمانی خود هستید. او اینگونه است. ارمیا یک نبی عهد قدیم بود که همچون دیگر انبیات توسط خدا برگزیده شد و او به طور خاص در مورد اسارت بابل صحبت میکنه. ارمیا سالها در شهر اورشلیم موعظه کرد و در مورد توبه معزه میکرد. در مورد احیا او از قوم خدا دعوت کرد اگر از گناهان خود توبه کنید اگر بیداری روحانی در شما رخ بده احیای روحانی پس خدا شما را تنبیه نخواهد کرد اما اگر به سوی خدا بازگشت نکنید خدا شما را تنبیه خواهد کرد بابلی ها خواهند آمد و شهر را محاصره خواهند کرد و بسیاری از شما قتل عام خواهید شد و کسانی که قتل عام نشوند در قُل و زنجیر به بابل برده خواهند شد ارمیا در این مورد موعظه کرد. انگیزه و پیغام او در وهله اول چنین به نظر می رسید. توبه کنید تا رخ ندهد اما سپس وقتی مشخص شد که قصد توبه ندارند او پیغام را تغییر داد او گفت که مجازات در راهه یک روز به افق نگاه کردند و بابلی ها را دیدند به مدت دو سال بابلی ها شهر اورشلیم رو محاصره کردند در تمام این مدت ارمیا پیغامی داد که خدا بر قلب او گذاشته بود اعلام میکرد پس از اینکه مردم قتل عام شدند و اونهایی که کشته نشدند در قول و زنجیر در یک رژه مرگآور به اسارت برده شدند ارمیا در شهر بود و بابلی ها گذاشتند که او اونجا بمونه او در جایی نشست اونها اونجا رو قار ارمیا نامیدند و او در این غار می میکرد نبوت ارمیا را به سختی میتوان تقسیم بندی کرد زیرا او نبی گریان هست. او مدام گریه میکرد. دشوار هست که کتاب رو تقسیم بندی کرد چون مردم تقسیم بندی شده گریه نمی کنند. او هرچه در دلش بود بیرون می ریخت و در حین نبوت زار زار می گریست و سپس مقداری می نوشت. و سپس مقداری پی نوشت در کتاب ارمیا هست که مراسی ارمیان نامیده شده. مراسی یعنی چی؟ گریستن و زار زدن. او گریه میکرد چون مردم قتل بودند. او گریه میکرد چون زنان جوان مورد تجاوز قرار گرفتند. او میگریست چون قوم در قول و زنجیر کشان کشان به بابل به اسارت برده شدند و او شاهد همه این امور بود برای همین او در کتاب مراسی گریه کرد تا اینکه به اواسط باب سه رسید سپس او مکاشفه بزرگی از خدا دریافت کرد و به خاطر این مکاشفه گفت که امید داره مکاشفه ای که خدا در قار به او نشون داد چی بود تنها این بود خدا هیچگاه از محبت به ما باز نمی‌ایستد او می‌داند که خدا هیچگاه از محبت به ما دست نمی‌کشه چون خدا بدون قید و شرط دوست داره محبت خدا شرطی نیست پس ارمیا این کلمات رو بیان میکنه که ما با آن این سرود رو می‌خونیم امانت تو عظیم است رحمت تو در صبحگاهان تازه می‌شود شما این کلمات رو در اواسط بابسه مراسی می می‌بینید خب این عهد جدید نیست، این عهد عتیقه، بسیاری از انبیا مثل حوشه و ارمیا و دیگران پی بردند که خدا خدای محبت و محبت او بدون قید و شرطه. کلمه رحمت تنها به این معناست، محبت بلا شرط خدا، محبتی که ما لیاقت اون رو نداریم، لیاقت ما نقطه مخالف اون بود، اما به هر حال او ما رو دوست داره، رحمت این هست. رحمت سی بار در کتاب مقدس ذکر شده. هر روز یک بار، زیرا خدا میدونه که هر روز به رحمت اون نیازمندی. اما میبینید که این شخصیت خداست و خدا اینگونه است. خدا محبته. اما وقتی میگیم که خدا محبته مقصود ما چیه؟ به اول قرنتیان سیزده مراجعه کنید و متوجه میشید که وقتی کتاب مقدس میگه خدا محبته، معناش چیه؟ در اواسط اول قرنتیان سیزده توصیف زیبایی از محبت خدا را میبینید به محبت خدا با کلمه یونانی آگاپه اشاره شده اون به طور خاص بر کیفیت محبت اشاره میکنه درست نیست که بگیم هرچه برخواسته از محبت باشه از خداست همونطور که اشاره کردیم اکثر محبت که ادعا می‌کنند محبت هستند از طرف خدا نیستن اونها شرطی هستند اونها بر پایه عمل کرد استوار هستند خدا اینگونه محبت نمیکنه در عواست قرنتیان سیزده توصیف محبت رو میبینید. هنری دراموند که یک واعظ بزرگ اسکاتلندی هست گفته که در عواست قرنتیان سیزده مفهوم محبت از منشور ذهن پولس رسول که از روح خدا الهام یافته عبور کرده و از سوی دیگر همچون خوشه ای از خوبی ها بیرون میاد. به نظر من این زیباترین روش برای توصیف آیات چهار اله هفت از اول قرنتیان باب سیزده است. شما نمیتونید محبت رو تعریف کنید حتی توصیف اون دشواره پولوس رسول دسته ای از رفتارهای خوب به ما ارائه میکنه و میگه اگر محبت داشته باشید رفتارهای خوب اینچنینی در شما به بار خواهد اومد. اول قرنتیان باب 13 آیات 4 تا 7 رو بررسی کنید هر یک از کلمات رو بررسی کنید تا اینکه مطمئن بشید که به چه معنا هستن. و اونجاست که دسته‌ای از رفتارهای خوب رو خواهید یافت که محبتی را که خدا هست برای ما توصیف می کنه کیفیت محبت میتونید تونید بگید که در این آیات توصیفی از شخصیت خدا دارید اگر شما این رفتارهای خوب را تحلیل کنید محبتی که همون خدا هست بلاشرطه و چون بلاشرطه فنا ناپذیره، این موضوع بسیار الهام برانگیزه چون وقتی کسی را هر طور که باشه دوست بدارید و نه به خاطر عمل کردش به او الهام می بخشید که اونطور که خدا میخواد باشه. من بر این باورم که در تحلیل آخر پولس در این باب بزرگ او به ما میگه که کیفیت محبت مقاومت ناپذیره. اما وقتی که مفهوم محبت از منشور ذهن الهام یافته پولس عبور میکنه و همچون دسته ای از رفتارهای خوب از سوی دیگر بیرون میاد در اول قرنتیان 13 در آخر به همون چیزی میرسه که آخرین عبارت متا فصل 5 به ما میگه. تمام انگیزه ما برای این سبک زندگی تنها چیزی هست که متا 5 چهل و پنج به ما میگه تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است. عیسی به ما میگه که شبیه خدا باشیم و ما را به این ماموریت دعوت میکنه که شبیه خدا باشیم که روش دیگری برای بیان این موضوع هست که او ما را به این ماموریت دعوت میکنه که نمک زمین باشیم و نور این جهان و شهری که روی یک تپه باشه که نمیشه اون رو پنهان کرد شمعه روی شمدان باشیم و یک راه حل و یا یک پاسخ برای دنیا او صرفاً از ما دعوت میکنه که شبیه خدا باشیم محبت باشیم، مانند خدا، محبت بلاشرط. در خانه ما تابلو بزرگی روی دیوار آشپزخونه نصب شده این اولین چیزیه که وقتی وارد خونه ما بشید میبینید وقتی خونواده وارد خونه میشن اون تابلوی چوبی بزرگ میگه خدا شما رو هر جور که باشید دوست داره وقتی بچه های ما سالهای نوجوانی خود را سپری میکردند، بعضی از اونها در شرایطی قرار گرفتند که باید ایمان خود رو نشان میدادند و ثابت میکردند که این چیزها حقیقت داره همه اونها الان در مسیح هستند ما خدا را از این بابت شکر میکنیم اما اونها هم در این شرایط قرار گرفتند. و گاهی اوقات دیرتر از وقت معمول به خانه می اومدن. گاهی اوقات تنها خداوند و خودشون میدونستند که چیکار میکردند. اما من اون تابلوی بزرگ رو روی دیوار نصب کرده بودم چون میخواستم تنها وقتی اونها وارد خونه میشن اون تابلوی بزرگ رو که روش نوشته شده خدا شما رو هر طور که باشید دوست داره ببینن. مهم نبود که چقدر دیر باشه. مهم نبود که اونها دنبال چه کاری بودن بعد وقتی از حال به سمت اتاق خواب که برید، تابلوی دیگری روی دیوار هست. اون با رنگ ارغوانی بر ساتن تزین و قاب شده. روش نوشته هر طور که باشید دوستتون دارم. من میخواستم که بچه هام با این دو حقیقت روبرو بشن. خدا شما رو هر طور که باشید دوست داره و من هم شما رو هر طور که هستید دوست دارم. بیان کردن این حقایق به عنوان پدر و مادر برای فرزندان یک چیز و بیان کردن اون برای دشمنان یک چیز دیگه اما می میبینید که خدا این کار رو میکنه خدا من و شما رو اینطور دوست داره او محبت خود رو برای تمام دنیا ظاهر ساخت نه این خاطر که دنیا خوب بود نه به خاطر عملکرد بزرگی که دنیا داشت رومیان با به پنج میگه زمانی که ما هنوز دشمن بودیم زمانی که انسان شریری بودیم زمانی که گناهکار بودیم او محبت خود را در مسیح به ما ثابت کرد عیسی در آخرین پاراگراف باب پنج میگه که ما باید اینگونه باشیم چون خدا در هر صورت محبت میکنه شما نیز در هر صورت که باشه محبت کنید خب برای این کار فیض لازمه اما اگر ما شاگرد او هستیم این فیض رو داریم و از این رو عیسی این حق رو داره که از ما بپرسه شما نسبت به دیگران چه کار بیشتری انجام میدید آیا نکته خاصی در شما دیده میشه؟ آیا چیز متفاوتی در شما هست وقتی مردم به شما نگاه میکنن آیا میگویند شما باید از خدا فیض یافته باشید وگرنه هیچگاه نمیتونستید این گونه باشی؟ دوستان من شما رو نمیدونم اما خود من شخصا با تعالیم عیسی مسیح بسیار به چالش کشیده شدم. حتما این ضرب مسئله رو شنیدید که میگه کار نیکو کردن از پر کردن است پس بیاید این هفته تصمیم بگیریم چیزهایی رو که شنیدیم و از درس امروز یاد گرفتیم تمرین کنیم حقیقت اینه که به عنوان شاگردان ما کلام خدا رو در زندگی روزمره تمرین میکنیم و دعا میکنیم که این درس ها به شما کمک کنن که در دانش و ایمانتون رشد کنید تا برنامه بعدی خدای ما که دلگرمی و آرامش میده به شما جسارت بده که مسیح رو در تمامی کارها و گفتارتون پیروی کنید و پدر خداوندمون عیسی مسیح رو جلال بدید.